الا بستان ژوئن 2008 نوشته بودی چیزهایی که تا اینجا برایت تعریف کردم رویت تأثیر گذاشته و کنجکاف شده شدهای ادامه ماجرایم را بدانی منم ما از این میترسم که حوصلهت را سر ببرم الا اینهایی را که مینویسم تا به حال به کسی نگفته بودم. حتی فکر می کردم خودم هم خیلی وقت پیش فراموششان کردم. تابستان 1975 را در مراکش میان صوفی گذراندم. برای اولین بار در عمرم خانقاه دیدم. اتاقم سفید بود. کوچک و ساده. فقط احتیاج اساسی را برآورده می کرد همین و بس یک تشک، یک لامپا، یک تصبیح کهربایی یک گلدان روی تاقشه نقش برجسته دست حضرت فاطمه روی دیوار و میزی از چوب گردو که توی کشوش شعرهای مولوی بود همهش همین بود نه تلفن بود، نه تلویزیون، نه ساعت دیواری، نه رادیو. سخت نگرفتم. با خودم گفتم پس از آن همه سال زندگی در خانه بی ها خیلی راحت می توانم توی خانقا زندگی کنم. بابا سمت بزرگ این مکان روحانی بود. آدم فوقلادهی بود. خیلی آقا با معلومات سرد و گرم روزگار چشیده و باهوش وقتی پرسید برای چه می‌خواهم به مکه و مدینه بروم در جواب دادن عجله کردم گفتم دنیای اسلام برای ما ها مثل قوتی سربسته است آدم از چیزی که نمیشناسد میترسد. نشناختن خاورمیانه باعث می شود ترس من و پیش داوری من بیشتر بشود. اگر یک عکاس غربی به مقدسترین شهرهای مسلمانان برود و به حرف آدمهای آنجا گوش بدهد و عکسشان را بگیرد بعد این اکسها و ها را همه جای دنیا پخش کند آیا قدمی در راه آشتی و گفتگو میان دینها برنداشته؟ بر نداشته؟ بابا سمت لبخند زد و طوری که انگار جواب سوالش را نداده باشم دوباره همان سوال را پرسید. گفت از ما کمک می خواهی اما اول بگو برای چه می خواهی به مکه و مدینه بروی آن موقع بود که فهمیدم باید رو راست باشم. هم با او هم با خودم. چون اگر موفق بشوم می توانم عکس هایی را که گرفتم به قیمت خوبی بفروشم و همه جای دنیا مشهور بشوم. بابا سمد آرام سرش را تکان داد و گفت می فهمم. حالا که تا اینجا آمده ای؟ و از ما کمک ای، نمی دست رد به سینعت بزنیم. کمکت میکنیم، اما نه برای اینکه تو به خواسته نفست برسی. برای اینکه شاید راهی که میپیمایی برای چون سفری درونی باشد. خدا دوست دارد بنده های عزیزش را در بیابان سرگردان کند تا وقتی به آب میرسند، رسند را بدانند الله قسمت می شود و سرانجام نه برای پول و شهرت بلکه به خاطر عشق به کعبه می به کعبه درونت یعنی به قلبت منظورش را نفهمیده بودم اما راستش را بخواهی برایم مهم هم نبود با خودم می تیپهای های عارف مسلک معمولا از این حرف های بی سر و ته میزنند می به من کمک کنند. همین برایم کافی بود. بابا سمت گفت تا وقتی به مکه بروم میتوانم بمانم و آنجا را مثل خانه خودم بدانم. اما فقط یک شرط داشت. ماده مخدر قدقن مثل بچه‌ای که سر به زنگاه مچش را گرفته باشند دست شدم نکند موقعی که بیرون بودم ساکم را گشته بودند بابا سمت انگار فهمیده باشد به چه فکر می کنم حرفی زد که به دلم نشست گفت برای فهمیدن اینکه مواد مصرف می کنی، احتیاجی به گشتن وسایلت نیست. چشمهایت را که می بینم، مگر همین کافی نیست. چشمهایت چشمهای آدم معتاد است. جنبه عجیب قضیه این است که تا آن روز، خودم را به آن راه زده بودم و قبول نکرده بودم به مواد وابسته شدم. گمان میکردم من از مواد استفاده می کنم نه اینکه مواد از من استفاده کند. فکر میکردم افسار دست من است. باباسممت گفت: «اگر زخمی داشته باشی که به نظر من داری، بیهس کردن زخم چیزیست مداوای زخم چیز دیگر وقتی تأثیر مواد تمام می شود مثل آن است که تأثیر داروی بیهسی تمام شده باشد هر کجای بدنت که درد می دوباره درد میگیرد. حق داشت میدانستم. قول دادم همه مواد شیمیایی همراهم حتی قرصهای خوابم را به او تحویل دادم. اما بدنم شروع کرد به لگت انداختن. هم شروع کرد به سکندری خوردن. در عرض چهار ماهی که در خانقاه بودم، بارها قولم را زیر پا گذاشتم و از راه بدر شدم. اگر تصمیم بگیری نشع شوی، هر جای دنیا که باشی، مواد میآید و پیدایت می کند. حتی لازم نیست دنبالش بگردی. همانطور که آب میگردد و چاله را پیدا می کند، مواد هم معتاد را پیدا می کند. شبی باز فرار کردم و دیر وقت نشعه نشعه برگشتم. اما در بسته بود. مجبور شدم توی باغچه بخوابم. صبح روز بعد پیدایم کردند در حالی که از سرما مچاله شده بودم. نه بابا سمت سآلی کرد نه من توضیحی دادم. اگر این حادثه های ناگوار را در نظر نگیریم کلن میانه با صوفی ها خوب بود. آرامش خانقاه برای حالت روحیم مفید بود. بعد از مدتها خودم را در آرامش احساس می‌کردم. در آمستردام عادت کرده بودم با کلی آدم غریبه زیر یک سقف زندگی کنم. اما اولین بار بود مزه تنهایی آرامش بخش را می‌چشیدم. در اولین نگاه آدم تصور می‌کرد در اینجا هم نوعی زندگی اشتراکی وجود دارد همه درویشها با هم میخوردند میآشامیدند دعا می‌خواندند، ذکر میگفتند می‌خوابیدند. اما توقع اصلی این بود که هر کسی تنها بماند و متوجه درون خودش بشود آدمی که به صوفیگری مند می می‌شود، ابتدا باید تنها ماندن در میان جمع را بیاموزد بعد هم یکی کردن جمع درونش را اول میگویی در دنیا فقط من هستم بعد میگویی در من دنیایی هست و در نهایت میگویی نه دنیا هست نه من هستم در مدتی که منتظر بودم، صوفیهای مراکشی مرا مخفیانه به مکه ببرند، اوایل از سر و چون کار جالب تری برای انجام دادن نداشتم، اما بعدها با کنجکاوی و اشتیاقی که رفته رفته امیغتر می شروع کردم به مطالعه فلسفه تصوف، دیدی یک وقت‌هایی آدم یک جرعه آب که می‌خورد، تازه می‌فهمد چقدر تشنه بوده. من هم درست همانطور. مثل تشنه‌ها نوشیدم از چشمه معرفت. در آن تابستان طولانی در میان آثاری که خواندم مصنوی بیشترین تأثیر را بر من گذاشت. روزی بابا سمت گفت. مرا که می بیند، یاد کسی میافتد. شخصی که در ذهنش تداییی میکردم در ویش آواری بود به اسم شمس تبریزی. بعضیها دربارهش حرفهای عجیب و غریب زده بودند. اما اگر از مولوی می شمس هم ماه بود هم خورشید. هرچه بیشتر به حرفهایش گوش میکردم، کنجکاویم بیشتر می شود. اما این کنجکاوی از آن کنجکاوی عادی نبود. وقتی بابا داشت درباره شمس برایم صحبت می کرد لرزشی عجیب احساس کردم. نوعی آشنا پنداری بود. چیزی را که الان می اعتراف کنم، تا به حال به کسی نگفتم الا. اما خدا شاهد است. آن شبی که بابا سمت اولین بار احوالات شمس تبریزی را برایم تعریف کرد، در اتاق به جز ما یک نفر دیگر هم بود. بدنی غیر جسمانی، پرتو نوری فسونکار. صدای دم و بازدم یکی را شنیدم. روی دیوار متوجه ای شدم. وزش نازنین نسیم شبانگاهی یا لرزش ابریشمگون بالهای فرشتی سبب هرچه بود در هوا نوعی افسون وجود داشت یک دفعه چیزی را فهمیدم نیازی نبود به شهری دیگر بروم در طول زندگیم همیشه آرزو کرده بودم به جاهای دیگر بروم به جاهایی ماورای مکانی که در آن هستم. از نگرانی هایم، از هوسهایم از جنگیدن با خودم خسته شده بودم. آن موقع اما درست جایی بودم که می خواستم باشم. تنها کاری که باید می کردم این بود که آنجا بمانم و درونم را بنگرم. من هم همان کار را کردم در خانقا ماندم سالها گذشت آنجا پخته شدم همه اوقاتم به عبادت و مراقبه می گذشت. آنجا مسلمان شدم و اسم عزیز زکری زهارا را برای خودم انتخاب کردم روزی از روزها بابا سمت ساکم را پس داد و گفت دیگر وقت رفتن رسیده مثل پرندهای شکاری پرواز خواهی کرد از این لانه حالا که عالم درونت را گشتهای و از نفست گذشتهی برو و دنیا را بگرد انسانهایی مثل تو همه عمرشان را در زاویه ای سرپوشیده نمی‌گذرانند. تو حکایت برای تعریف کردن داری به این ترتیب از جایی که با اسم کریک واردش شده بودم با نام زهارا خارج شدم به این مرحله جدید و پر از سیاحت زندگیم میگویم موسم آشنایی با حرف فی کلمه صوفی باقی بقاید ازیز